افسوس که نان پخته خامان دارند، اسباب تمام ناتمامان دارند، چشم خوش ترکان به تماشای دل است، ملکی است که شاگرد و غلامان دارند. اکنون که دم از عمر محروم نشد، کم بود ز اسرار که مفهوم نشد، چون کمی بنگرم از روی خرد، عمرم بگذشت و هیچ معلوم نشد. آن قوم که سجاده پرستند خرند زیرا که به زیر بار سالوس درند این از همه طرفتر که در پهده زهر اسلام فروشند و کافر و ترند آن کس که گنه به نزد او سهل بابد این نکته بگویدان که او اهل بابد علم ازلی علت اصیان کردن نزدیک حکیم قایت جهل بود.